جلسه 31 درس قواعد فقه و سیاسه الحکومم 24 بحمن هزار و مؤسسه بسم الله الرحمن الرحیم الله و نبی نائب القاسم محمد و اهل احل بیت تاهرین المعصومین سی مبقیت الله فالعرضین روحی و الراح بالعالمین اللح الفدا با تحکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اعتخار به بحث که ما به عنوان بحث اهم و مهم میپرداختیم ادانیم بحث مهم در بحث اما اینه که الگوهای مختلفی ما طبیعتا داریم زوابط مختلفی داریم باید این الگوها و زوابط رو استنباد کرد و استخراج کرد و در مقام تدبیر سیاسی به کار گرفت خب از اونجایی که این موارد توانند در خالب گزاره کلی مطرح بشن ما اونها رو میتوانیم قاعده حساب کنیم معمولاً قاعده اهم و مهم رو یک قاعده تلقی می کنن. اما چه بسا با ترجم ورس های مختلفی که داریم اون رو حاوی چند قاعده مختلف بدانیم منظومه از دواعده مختلف که در دل اون بحث می توانیم مطرح کنیم در واقع ما چند قاعده فرعی رو در خلال بحث های گذشته در قالبی که مد نظر بود به صورت ترکیبی رو و حالا یک تقریر از اونها رو در قالب هفت قاعده پیسر هم در سه وادی دیدیم که بعضی ها به کار برده بودن رسیدیم به الگویی که جناب استاد احمدالی یوسفی در بحث فقه نظام دران به کار می‌برند ایشان در سه قالب در سه ساعت این تضاحم رو مطرح میکنن رفع تضاحم در داخل یک نظام رفع تضاحم در میان نظامات مختلف رفع تضاحم احکام فرد و احکام فرد احکام نظام و در داخل نظام خب سه وادی است بحث اول ما مربوط به رفع تضام در داخل یک نظام عینی بود این رو هم ما اینجا گفتیم که در داخل نظام اناسر مختلفی وجود داره برخی از دوستان و اعزه اشاره فرموده بودن که ایک وجود داره هرچند بزرگ باران فکر میکنه هنوز تشریف نیوردن ولی از باب تکمیل موجودین بحث شد و بحث اون رو این بذاریم این قسمت‌های مبهم رو شفافتر کنیم. پس ما یک بحث رو می‌گیم رفع تضاهم در داخل یک نظام بر اساس اون هم رفع تضاهم بله بله. بفرمایید. سلام سلام علیکم. سلام علیکم. سلام سلامت باشید ان شاء الله. درofstream رو یه مقاله یه مقاله آاج من چست کردم برای شما فرستادم از آ یوسفی تو اییت نکردید اصل که من هم بله چشم نگاه میکنن خطر اگر ما کلش رو هم خودم الان جلوی لپتاپ باز بکنم همین که برای دوستان به اشتراک بذاریم من نگاه میکنم حالا اشتراک اگه از تو اینترنت از چه مق... از چه جایی پیدا کردید این مقاله رو چند قالب دارن ولی یه نسخه ای که من دارم لزو از این جهت که برای مجموعه تشخیص به نگارش در اردو هم به من داده بودن از این با من محظور داشتم که خدمت به دوستان تقدیم کنم ولی من خدمتتون عرض کردم عنوانش رو شما فرمودید من با کمون عنوان پیدا کردم مقاله رو خوب. و این مباحثم ذیل اون مقاله دیدم که بهش اشاره شده بود اگر خوب. که سلام میکنم. من خوبه اگر باشه به اشتراک گذاشتنش که برای دوستان خیلی خوبه تشکر از زحمتتون البته من از خودشون دو سه من. نسخه گرفته بودم یه نسخهش اینجا بود شاید بعضی پر پررنگ‌تر کرده بودش اما خب این کمک می‌کنه در خدمه از این بحث در مجموع زیر مجموع قالبی که ایشان در نظر دارند در تضاهم بین یک نظام من اضافه کردم به تحبیر که ما از میتوانیم نظامات مختلف داشته باشیم نظام تعلیم و تربیت نظام فرهنگ نظام حقوقی نظام سیاست نظام, نظام هایی مختلف متنوع، نظام اقتصادی خب جناب رسود رشد با ترکیب چند الگو مجموع نظام هایی رو درست میکنن در اون الگوی خاصی که دارن و ترکیب اینها یک الگوی تعاملاتی تعمل که چهار مورد داره بعد اونها رو در موارد دیگه زرد میکنن کنن عنوان رو استخراج میکنن خب حالا ان یکی معاملت و نفس معاملت الله معاملت خق و معاملت و طبیعت. خب این دو س... این چهار ساعت رو پ سر هم در نظر می و بلگو دیگه ای که برای نظام سازی هست در این می توان ضرب بشه. خب در مجموع حالا ضرب و تقسیمش رو کار ندهم عملا میخوام بگیم می هر کدوم از این نظام ها یک تضاهماتی میشه توش در نظر بگیریم. جناب استاد یوسفی آمدن در داخل یک نظام دو گونه تزاهم رو تصویر کردن یکی تزاهم اولا در هر نظام اردن سه عنصر رو به عنوان اجزای عنصر برجسته کردن اهداف نهایی، اهداف میانی و اهداف مقدماتی و عملیاتی به طور مثال خبرشته تخصوصشان بحث فقل اقتصاد هست یک هدف نهای تامین رفای عمومی رو در نظر گرفتن برای اهداف میانی هم با تمسک به اون روایت شریفه که فرمودن سلاست و اهداج یه اهداج ناس طررن الیها الامن والعدل العدل و الخصب یک در به عنوان اهداف میانی رو و اهداف مقدماتی هم که فرمودن که بسیار متنوع. خب تضاهم در میان کجا مطرح میشه قبل از تضاهم اینم کنم سعادت رو به عنوان در واقع نقطه ایدئال و هدف نهایی برای همه نظام ها به صورت مشترک در نظر گرفتن اون رو در اینجا دیگه نیو اون رو شاید بگیم مثلا هدف مجموعه نظام هاست ل آمدن هدف نهایی مربوط به هر نظام رو به صورت اختصاصی اووردن در لحاظ فرمودن تامین رفاه عمومی این میشه هدف نهایی اقتصاد و تامین امنیت تامین رفاه و تامین عدل میشه اهداف مقدماتی برای این هدف نهایی به تنا و بحث اقتصاد خب. بحث، تزاحم اول اینی که تزاحم هدف تر با هدف بالاتر که اینجا سه صدد میشه دو دست تزام پیش میان اهداف مقدماتی و عملیاتی با اهداف میانی تزام پیدا کنند اهداف میانی هم با اهداف نهایی بخوا تزامون پیدا کنه خب این یک مجموعه تزام تضاهم دسته دوم تضاهم یعن اهداف همرتبه است خب اینجا این تضاهم هم لحاظ شده ده. این و همینطور در میان نظامات هم تن تضاهمان رو ردیف خواهند کرده خب ما اینجا یه قسمت برای هر ابهامی که برای دوستان بود من خیلی خوب متوجه نشدم در این قسمت قسمت به قسمت بخوام به نقطه فرماشی هست دوستان بفرمان که رفع ابهام بشه خب برای این قسمت دوستان دو سه نفر پیام گذاشتن تا من بخوام نگاه کنم فقط سلام علیکم آقای نجف های فردا برنامهریزی کوتاه مدت میان مدت بلند مدت تعریف میشه خب اینا خوبه باید ببینیم که ارتباطش رو خواهشان دوستان که میفرستند با بحث تظهمم مطرح بفرمایند اه خب اینجا الان پس تصویر تضاهم بین اهداف است. من یک نقدی که در واقع تکملهی که داشتم چی بود؟ این که ارز کردم تضاهم میتوانه در یک نظام میان یعنی اجزای مختلفش محل بررسی و تحمل قرار بگیره اجزای یک نظام چیه؟ اجزای یک نظام متنوع. البته تفکیک کم کردیم بین نظام مستبد و نظام نظام سازی نظام که ما میسازیم در عینیت بیرون نظام سازی عینی، اون نظام مستبد خب مربوط به عالم استنبات بعد که میخوایم تحققش بدیم و به کارش بگیریم تضاهم در اونجا لحاظ میشه اما میارهای رفع تضاهم باید در نظام مستند باشه هم نظام اولویات و, و هم الگوی در واقع تقدیم اهم بر مهم خب اونجا باید لحاظ بشه اما با توجه به تضاهمی که ما در نظر داریم تضاهم مربوط به چیه؟ تزاهم مربوط به فعل فعل است. خب بر این اساس ما ببینیم بعد دوره رفت و برگشتی با جناب استاد یوسفی خواهیم داشتیم هم برای فهم هم برای تحلیل و احیانا نقد خب ما تزاهم رو میان دو فعل میگیریم این فعل من با اون فعل من این فعل واجب است اون فعل حرام است من یه قدرت بیشتر ندارم یا یه هر دو واجب من یه قدرت بیشتر ندارم یا هر دو حرام مجبورم و هر دو رو ترک کنم باید هر دو رو ترک کنم اما ناگزیر از تحمل یکی هستم خب اینا فعلا پس, پس اگر ما بخوایم بیم در تضاهم میانه بحث نظام اون تضاهم تزا، فقی که به نظر ما بود در واقع یه بخشش این میشه تضاهم در هدف گذاری و حرکت به سمت هدف خب اینجا دوتا هدف تضاهم بیدا کنن یعنی چی؟ اینو ما باید معلوم کنیم در واقع مرحله هدف گذاری خب میگیم آقا این هدف منه اونم هدف منه اگر بخواد تزاهن در خود هدف گذاری به معنای واقعیش باشه اینجا خب ممکنه انجام ندیم بگیم آقا من یک هدف رو هدف قرار نمیدم نهایتا خروجی یک هدف بیشتر نخواهد بود یه مقداری شاید ابه در خود در واقع تزاهن در تظاهم خود هدف گزاری باشه هدفگذاری فعله. ولی شاید خیلی تظهمم برانگیز نباشه، در واقع چندان جای در واقع تظهموم نیست مگر به صورت خاصی تصویر بشه. یعنی چی من میخوام، در واقع با توجه به همون اقدامی که میخوام انجام بدم در واقع حرکت به سمت هدف اگر تضاهم داشته باشه در واقع اون تضاهم حرکت بین به سمت هدف رو به سمت دو هدف ناسازگار رو ما خلاصه اون رو در واقع به عنوان تضاهم در هدف گذاری تلقی کنیم اگر به این معنا خب پس این یک معقوله تضاهم در هدف گذاری خب میرسیم به بحث راهبردها. بردها عملا راه اون طرق حرکت به سمت هدفند یکی هم تزامهم در روش ها این روش با اون روش ناسازگاری داشته باشه. وی شبیه دو تا بحثم که ما قبلا اشاراتی داشتیم. یکی در مثلا فعل سلامت می که دو فعل دو جزء اون با هم تنافی داشته باشند. یکی هم دو تا شرط با هم تنافی داشته باشند یا شرط با جز تنافی داشته باشه خب اونجا تنافی در افعال که میگفتیم خود صلات یه فعل بزرگ بود درسته اجزای فعلی میتوانن در واقع اجزای یک فعل بزرگ باشن که با هم تنافی داشته باشن تناغم من یک قدرت بیشتر ندارم میخوام رکعت اول رو بخوانم یه فعلی انجام بدم با رکعت دوم خب تضاهم در اجزاء فعلی تضاهم در شرایط شرایطم که چی بود یه جوری به فعل مربوط بود برخوردار شدن از یا حفظ مثلا تهارت حفظ تهارت یا حفظ استقبال رو به قبللب بودن نیاز داره حفظ، الان بر باد میاد یا من تو وسیله هستم تکان میخوره، من باید این استقبال رو حفظ کنم. این اجزا فعلا شرایط هم می فعلی باشند. خب، ما از اون یا میان تظهمم میان میان شرایط و افعال و اجذاب اعضای فعلی خب، اینها به صورت هر دو فعلا. وقتی خب ما میخوایم بحث تظهمم رو بیاریم در میان بحث نظام این رو تطبیق بکنیم، خب هر در واقع اگر هدف گذاریه یعنی فعل هدف گذاشتن واقعا هدف گذاری میگیم آقا ما الان میخوایم یه جلسه بگیریم برای نظام تعلیم و تربیت هدف گذاری بکنیم یه جلسه دیگه هم بگیم میخوایم بذاریم برای اقتصاد هدف گذاری بکنیم این رئیس جمهور بنده خدا در همزمان در بیست شورا باید شرکت کنه خب این الان یه نوع فعل هده هدف گذاری در قالب یه اقدام فردی یا جمعی قرار بگیره تصویر بشه این بندی خدا همزمان باید برای ده عرصه هدف گذار کنه خب خود, خود این تزاهون میخواه تزاهون ایجاد میشه در بینش قابل تصویره اینجا هم ما همونطور که در نماز میگفتیم تضاهم در شرایط، تضاهم در اجزا، تضاهم در شرایط فعلی، در مقوله های مختلف مربوط به نظام هم ما باید ببینیم آیا فقط یک تضاهم میتوانیم تصویر بکنیم، تضاهم بین اهداف ارزی یا اهداف طولی یا این که نه می توانیم در امور دیگه هم بذاریم خب اینجا اجوالا تضاهم در هدف گذاری در فعل هدف گذاری خب به یه خاصی تصویر می شه شرکت مثلا کارگزار کارگزاران یا رئیس جمهور در جلسات همزمان در شورا های همزمان خب اینجا تظهمه نگاه بکنه ببینید کدامش مهمتر خب باشه. یه معقوله دیگر هم اون خود حرکات ما در اون حرکت به سمت هدف ببینیم اون حرکت باید فعل باشه اگه تظهمه و فقیمت نظره میخوان ضواوت فقهی رو به لحاظ بکنیم. در واقع باید ما کار کنیم اجزا یا شرایط رو فعلی بگیریم خب ببینیم چند آثار دیگه داریم ما ببینیم راه اموری به اسم راه برد داریم آیا می توانیم تضاومه در میان راه برد هم تصویر کنیم خب راه برد چیه؟ اون شیوه های حرکت و طرق دستیاب حرکت و دستیابی به هدف طرق دستیابی به هدف این الان از ماهیت فعلی داره فعلی و رفتاری داره بنابراین خلاصه می توانیم تصویر, تصویر تزاهم به معنای مصطلح رو خلاصه در میان اونها داشت نسبت به این موارد جای تر هست پس چرا محدودش به اهداف میکنیم خب میریم بحث روش ها قبل از روش یکم بحث سیاست های کلی حالا اگر سیاست کلی رو ممکنه با راه برد ما متفاوت بگیریم راهکار رو بعضی ها در بین راهکار و راه برد یک دشواری دارن که اونها رو چگونه تصویر کنن طرق دستیابی هدف هدفی میشه راه برد اگر راهکار بگیم راهکار یه مقداری جنبه روشی داره با روش یه مقدار یکیش بگیریم خب راهکارم همطور که کلمه کارم درش آمده روش هم با ابزار متفاوت داره ها محدودیت ابزار هم ما داریم میتوانیم محدودیت ابزار هم بیاریم اون بحث جداست اما تضاهم در سیاست های کلی باید ببینیم که آیا اون هم ماهیت فعلی داره تضاهم در روش ها و راهکار ها ببینیم ماهیت فعلی داره یا نه تضاهم در بیکارگیری ابزار ها خب خود افزاک تزاهوم فعل نیست که بگیم تزاهوم بناه اصطلاعی در اون بکار میره ولی بکارگیریش همینطور روش هم میتوانیم در واقع بگیم بکارگیری روش ها خب سیاست های کلی چی؟ سیاست های کلی هم میتوانی خودش از سنخ فعل باشه شبیه راه برد اگر حالا ممکن کسی با راه برد یکی بگیره اون ولی چه واسه بگیم اصول کلی و کلان حاکم بر فعالیت و رفتار اینی خب در واقع اگه اصول بگیم یه حیث وصفی داره ولی وقتی که خلاصه به فعل می میگیم این یک سیاست کلی باید مثلاً در فعل اداری مثلا نظم حاکم باشه حالا مثلا این نوع سیاست کلی بگیریم باید امور فوری مقدم بشه تأخیر نیفته باید به ارباب رجوع ما تکریم بکنیم مثلا این رو به اونان سیاست کلی برفرض درست نظر بگیریم خب اگر اینها رو هم از سنخ فعل بگیریم پس اینها جای این رو دارند که در واقع ما بیام چیکار کنیم بگیم که در مباحث مربوط به تدبیر نظامات تظاهوم های مختلفی فراتر از تضاهم میان اهداف می توان تصویر کرد. بنابراین به تعبیر دیگه، نمیتوان تضاهم در درون نظامات ت رو محدود به تضاهم در اهداف کرد خب همونطور که در تضاهم در میان نظامات ته بیرونی رو هم همینطور یا در تضاهم میان نظامها و تظامقومم میان افعال فردی و افعال در واقع مربوط به نظامات اینها قابل خلاص محدودیت نیست. پس تا اینجا عرضه که من داشتم اینکه این الگوی که الان تظامم رو یه مقداری محدود میکنه به تظام مییان اهداف به نظر میث دائره تظام رو باید وسیتر بگیریم. در واقع دایره تضاحم در نظامات تضاحم فقهی مد نظر ما چیه هر جا که هر مقداری که جای فعل هست در واقع جای ورود تضاحم تضاحم مربوط به افعال ناسازگار با یکدیگره خب در نتیجه ما باید دایره رو وسیع‌تر بگیریم. خب این یک نکته اگر فرمایش هست استفاده کنیم. در این قسمت برنامه هم که جناب آقای نجفاوتی فرمودند در واقع برنامه رو می توانیم مجموعی از افعال بگیریم. خب اینا فرمایش خوبیه در واقع محدود به روش بهانه عام نیست. تعبیر دیگه هم که من معمولا بهش میپردازم اونها هم میتوانیم ساختار سازی تضاهم در ساختار سازی ساختار سازی فعل ماست تضاهم در رویه ها در رویه خودش چیه؟ مجموع مجموعه اقداماته یه موقع ما محدود به یک اقدام میکنیم میگیم ما اقدام فلانفرد رئیس مرعوس زیرده از کارگزاران جز یا کارگزاران میالوی رو در نظر میگیریم خب اینها فعلا اما تضاهم در رویه ها مجموع اقداماتی که به صورت منسجم تعریف شدهاند. اینها چی هستن؟ اینها هم رویه ها هم میتوانن بلکه بیشتر می توانند پیدا کنند با رویع یا اقدامات موردی تضاهم پیدا کنند. رویه ها چون مجموع اقدامات هستند اینها امکان در واقع امکان تضاهم بیشتری دارند. چرا چون یک فعل که نیست مجموعه افعال مرتبط با یک دیگره خب برگردیم برنامه برنامه عملا یه زاویه دید خاصیه می توانیم با رویه ها با موارد اینطوری اینها رو ترکیب کنیم رویه ها و برنامه ها عملا هر دو رو میشه با هم بگیریم تضامن در رویه ها و برنامه ها, برنامه ها چیه مجموع اقداماتی هستند که یه نظم خاصی دارن به صورت منسجم هدفمند و بازدابط تعریف شدن با این رویه ها برنامه ها حالا برنامه ها گاهی یه میه رویع یه می میشه برنامه یه موردی اما برنامه های مستمر رو ما میتوانیم اون حساب کنیم حالا تعبیر استراتژی هم که راه رسیدن به هدفه معمولا حالا به من راهبرد یا راهیافت و اینا مطرح میکنن بین راه برد و راهکار و ابروچ و اینا به حال یه رایج هست حالا ما اون راه ها رو اون طرق دستیابی کلان حساب کنیم طرق در واقع کلان دستیابی حساب کنیم اسم این رو راه برد بیشتر چه حساب می گذارن. اما اون رحیافت و راهکارها یه مقدر جزئی ترن ولی روح حاکم برای اونها رو ما الان در بحث خودمون از این منظر دیدیم که آقا اینا مجموع فعلا برنامه ها خب فرمودند که سیاست قطع نظام عدم به رسمیت شناختن رژیم سحینستی دشمنی بانست راه راهبرد ممکن است در طول مدت عوض شود مثل اینکه راهبرد ما طبیعت جفه مقابلت با باشه به نظر میرسه راهکارها یه نسبت به راهبردها یک یه مقداری تغییر حضیری بیشتری دارند. یعنی یه مقداری نسبت به سیاست های کلان راه برد ها البته بستگی داره یه مقدار نسبی هم هست یعنی این فرماش ازت یا جای شاکر فرمودن راه برد یه مقداری تغییر پذیر گرفتن. بعضی بزرگواران بعضی متونه تخصصی یه مقداری این راهبرد رو یه مقداری بااسعات بیشتر میبین. خلاصه با صحبت بیشتری از راهکارها و رحیافتها مثلا تلقیش میکنن برای نسبیه یه مقداری اینجا بعضی موارد من دیدم اختلاف رأی و نظرم هم فیل جمله وجود داره خب برگردیم اه جناب اه اه اه نه جناب آقایچ که فرمودن ما تعریف از بین خودمون میکنم خیر؟ من فقط ت... اشاره اجمالی داشتم که تعریف های مقدری... رای جزد اما در بعض تعریف راه برد و راه کار راه یافت چون که ترجمه می گیرن از ابروچ و بعضی موارد دیگه یا مثلا مفهوم استراتژی و اینا یه جاهایی توافق صد درصدی در ترجمه اینها و معادل گذاره نیست هرچند در بعضی های دانشی مثل مدیریت یا بعضی بحثی دیگه تو دلون دانشگاهی یه مقدار صحباته و استقرار رو قرار بیشتری وجود داره اما در مجموع بین این تعابیر اون مقداری که من خاطرم هست و معمولاً خیلی جا بحث میشه یه مقداری این تفاوت بین راه برد و رهیافت و راه کار و اینا یه کمی اختلاف برانگیز فیل در مجموع دانش هست ولی این که در بعضی دانش های مقداری خلاصه قرار بیشتری باشه خب دوستان جناب های شاکری بحث هدف رو فرمودن که اهداف مراتب مختلفی داره خب این رو که در بحثمون بود جناب استاد یوسفی محور بحثشون این بود ما این قسمت رو خواستیم اول ایشون رو در این قسمت رو اردن بگیم آیا محدود است یا در موارد دیگه هم می توانیم بیاریم که ارزم ما این بود که می توانیم بیاریم بعد فرمودن هدف رو اگر علت قایبه داریم هدف خودش نتیجه علل موجده است یعنی هر هدف نتیجه علل منحصره خودش بنامه انتظام یک دست علت منحصره هدف منحصر ضرور پس از خود به وجود بیاره در نتیجه اگر تظامی است در همین دست علل نه در هدف به تعبیری کسی که علل رو در نظر گرفته علل معلول منحصر را به وجود میاره خب این قسمت رو ای در واقع یک ابحامی اگر من برگردان اول سر ریل تا این فرمایش حضرت عالی رو یه مقداری بیشتر در نظر بگیریم. پس جناب استاد یوسفیت هرشون یکی این بود که آه در داخل یک نظام ما داریم بعد تزاهن رو بردن سر بحث اهداف اهداف هم سه دست رتبه شد نهایی میانی مقدماتی و عملیاتی و یا نزدیک یا تحبیر دیگه به تحبیر آقای شاکری اهداف دانی بعد فرمودن که تضاهم اینجا خب وقتی بین اهداف دو نوعه تضاهم هدف پایین تر با هدف بالاتر یکی دیگه هم تضاهم بین اهداف هم هست. خب در حالا اهداف هم عرض و فیلن کار نداریم در اون قسمت تزام همه با هدف بالاتر یک مشکلی که بود جناب اصداد یوسفی یه مقداری تردید در تردید بودن خودشون متنی رو ورده بودن بعد دوباره کوتاه آمدن که جلس قبل هم اشاره کردم اینجا در واقع ما باید ببینیم که آیا یک سؤال منطقی اینجا آیا می توان بین اهداف طولی تزا مثلا مطرح کرد این اصلا این سوالیه به چه معنا بینجانو جای تیزی تعبیر به کار بردن از اون من استفاده میخوام بکنم بحث علت بودن و معلول بودن وقتی که ما میگیم هدف یک دو معقوله رو در واقع باید در نظر بگیریم یکی اون هدف گذاری ذهنیه اون تصویر ذهنی که از هدف ما داریم خب اینجا بحث هدف به صورت پیشینیه مفهوم هدف یه مقداری به انگیزه قصد داره نزدیک میشه ما علل عربه که داریم از اون منظر نگاه کنید یه موقع بگیم که اون ماینته ینت، ما الیه و اون مقصد اونی که ما نهایتا بهش میرسیم هدف یه موقع به معنای تصویر ذهنی و پیشینی از اون مایوسل و الیه اونی که قرار بهش برسیم ما تصویر میکنیم یکی هم اون چیه ما خود مایوسل و الیه ماینتهی الیه الهرکم خب این ماینتهی الیه الهرکم اون آخر کار است اون معلول معلول علل مقدمه بر خودشه خب پس اون افعالی که ما انجام میدیم میشه علت برای دستیابی به اون معلول اما اون تصویر ذهنی دیگه خودشون معلوله اون افعال بیرونی ما نبود اون پیش از افعاله در واقع تصویر پیشنی از ما یوسل و که قرار بهش برسیم این مقدمه خب حالا ببینیم تأثیرش در تزاهم چیه این تعبیر علت معلول رو که به کار ببریم من این بحث رو میخواهم به این صورت عرض کنم که ما یه بحثی داریم در نماز و در برخی عبادات میگیم یک چیزی مقدمه است میگیم مثلا وضو مقدمه صلاته. اینجا مقدمه یه مقداری مقدمه در واقع نسبت در واقع عرض کلیم چیه میخوام ارز کنم ما تصویری از هدف و مقدماتش داشته باشیم انواع مقدمات اگر اجازه به فرمایید جنو ست رشادی دارم من یه جمله خدمتشون عرض کنم پس یک انواع یک مقدماتی داریم و اهداف ما یه معنا از اهداف رو اینطوری در نظر گرفتیم که ما یوسل و و اون تصویر ذهنی حالا خود اون بحث چگونه از اون مقدمات مقدمات ی موقع در واقع این اگر ما می‌خوایم این اهداف رو مقدم حساب بکنیم اهداف مقدمی و نزدیک اینها مقدمه برای مقدمه و علت برای دستیابی به اهداف میانی هستند چون که اهداف در واقع میانی مقدمه و علت برای دستیابی به اهداف نهایی هم خب اگر اینطوره در واقع واقعا اگر میخواییم اینجوری در نظرش بگیریم در این صورت واقعا اگر مقدمه مقدمه وجودی در این مورد تصویر شده و در واقع یکی علت مقدمه وجودی و علت در این مورد تصویر شده تا ما به اون هدف برسیم یکی, یکی هدف در واقع پایین قرار چی باشه؟ علت باشه اما اه، اه، در سلاد چی؟ در امثال سلات ما میبینیم که در واقع تحارت مقدمه اعتباری است نه مقدمه واقعا وجودی نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما مقدمه فرضش کردیم می شودیم مقدمه حسابش نکنیم شاهره این رو حالا با عالم تکوین و اعتبار اون واقعیت نسل الامری فعلا کار نده از ظاهری مقدمه اعتباری برای صلات میشه. خب اینجا می شود چه کارش کنیم؟ بگیم که این مقدمه نباشه پس الان ما اگه وقت کم داشته باشیم قدرتمون محدوده اینجا تزاهم تزاهم بین در واقع دو فعل مزبور امکان داره تصویر میشه اما اگر واقعا پس در همه موارد دیگه ما میتوانیم بگیم که هر جا که مقدمه اعتباری بود تزاهم جا داره خب حالا اگر اگر اهداف ما از سنخ مقدمات اعتباری باشه درسته دو فعله جداست درسته اینجا امکان تصویر تضاهم هست مثلا میگیم اقا هدف ما اینه که یه برنامه بذاریم در مدرسه بعد بیایم هدف‌های خردتر رو هم درست کنیم. بگیم آقا اول باید مثلا شما سرود بخونید، سرود جمهوری اسلامی. بعد فلان چیز رو بخونید. خب این دست ماست. درست دو فعله اول سرود یا مثلا اول قرآن یا بلعکس اول قرآن بخوانیم یا اول سرود بخونیم. و اینا ربطی به هم ندارن. دو فعل جدا. اگر قدرت نه بیشتر ناتشیم یک رو بخوایم انجام بدیم یا مثلا بگن آقا دیر شده. خب اینجا تزاهم جا داره امکان تصویر تزاهم وجود داره در واقع به تعبیر دیگه ما در هدف گذاری هدف گذاری ما متکی بر در واقع مقدم ساختن و مقدم اعتبار کردن و مقدم تلقی کردن و مقدم طقی کردن یکی نه. دوستان صدا رو دارن آیا صدا صدار دارید شاید تلفن قطع شد من یه بار خارج میشم الحم دابلله